اواخر پاییز بود اما هنوز خشکی هوا با آن پای نرسیده بود که اصر و سر شب آدم احتیاج به روپوش گرمی داشته باشد یک پیراهن ابریشمی آستین کوتاه برتن داشتم و او هنوز کت تابستانی و شلوار خاکستری می‌پوشید کراوات خوشرنگی بسته بود رنگ اننابی و خال سیاهی داشت وقتی رادم سینما دیدم ترس برم داشت خیال کردم هم مرا و هم او را کسی تعقیب کند یک نفر پشت سرش ایستاده بود و وقتی به او نزدیک شدم مدتی به من نگاه کرد. همین که در سینما او را متوجه آن مرد جوان کوتاه قد با سبیل مشکی کردم گفت چیزی نیست. با ما کسی کاری ندارد. گفتم من دیدم که مرا ورانداز کرد. گفت اهمیتی ندارد از خودمان بود پرسیدم پس چرا مرا با او آشنا نکردید گفت نمیخواستم او با تو آشنا بشود آن روز خانه شما چه خبر بود پرسیدم شما از کجا خبر دارید گفت در دو هفته اخیر اده زیادی را گرفتند گفتم خانه ما هم آمدند و گشتند گفت صبر کنید تا یادم نرفته چیزی به شما بگویم. نامه های شما از پاریس به چه اسمی میرسد؟ گفتم روی نامه نوشته میشود خدمت علیه عالی خانوم فرنگیز خانوم. پرسید اسم پدرتان هم هست؟ گفتم نه فقط در خانه ما اسم خیابان و نمره خانه هست. گفت خانه تا نمره هم دارد؟ گفتم آره گفت خب تلیگلاف کردم که با آدرس شما دیگر نامه ای نفرستند اگر نامه ای رسید آن را تا 24 ساعت باز نکنید و اگر آمدند و مطالبه کردند پس بدهید و بگویید این نامه مال شما نیست و عوضی اینجا آمده است پرسیدم اگر نیامدند چه؟ گفت با وجود, این، با وجود این نامه را باز نکنید. بدهید به من. وقتی رجب آمد، بدهید بیاوردش پیش من. من آن را باز میکنم و میخوانم بیان که سر پاکت را باز کنم. بعد به شما برمیگردانم. نامه را همینطور نگه دارید. دل با پس شدم. پرسیدم، استاد مگر خطری هست؟ گفت، خطر همیشه هست، اما گمان نمی کنم که این روزها دیگر حادثه ای برای شما اتفاق بیافتد. به علاوه من هنوز وارد نیستم که در خانه شما چه رخ داده است. اول شما بگویید. هرگز او را آنقدر ملتحب ندیده بودم. وقتی در تاریکی دستم را گرفت که جای من را عوض کنیم داغ بود و من ابداً چنین انتظاری نداشتم. آقای نازم می که آن شب از هنگام مواجهه با او به سر من آمده است طوری نیست که بتوانم به این سادگی برای شما بگویم ببینید من پدرم را دوست داشتم اما بیشتر دلواپس استاد بودم قلبم میزد که مبادا بلایی سر او بیاورند خطری که استاد را تهدید کرد به نظرم هزار بار شدیدتر از بلایی بود که به سر پدرم آمده بود در بودم بود اما این مرد که آنقدر خوددار بود و می توانست عواطف شدیدی دیگه درون او را و زیر او را تیمی کرد ته دلش پنهان نگه دارد. آن شب تحت تأثیر پریشانی خیال من نزدیک بود تعداد خود را از دست بدهد. از کجا می دانستم که او هم مثل من زجر می کشد؟ رنجی که ما میبردیم از دو جنبه متفاوض بود. من شکنجه روحی خودم را نمیتوانم توجیه کنم. اگر تا به حال از آنچه گفتم فهمیدید که چه بهتر. اما اگر هنوز دستگیرتان نشده دیگر از من ساخته نیست. اما او، او انسان بود. برایش هیچ چیزی که جنبه فردی و شخصی داشته باشد وجود نداشت. او همه چیز حتی ندای دلش را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار میداد و اگر با اصولی که به آنها پایبند بود سازگار نمی آمد این ندا را هم خفه می کرد بهتان گفتم که برای او هنرش بیان تمام توقعات وجودش بود آنچه او روی پرده می آورد آن چیزی بود که ته دل و از لابلای روح بلندش شده بر زبانه می کشید برای او هیچ چیزی گرامیتر از هنرش وجود نداشت هنرش هم متکی به جامعه و مردمی بود که میان آنها زندگی میکرد دیگر کی توقع داشت که عشقش را هم فدای این آرمان گرامیش نکند نه اینکه او میتوانست بر سیل احساسات پرشور و متلاطمش غلبه کند و با قواه اقلانی مانند صدی راه آنها را ببندد نه او میتواند دندان روی جگر بگذارد دل سوزانش را در مشت... مشتش بفشارد و نگذارد که تپش آن را کسی خارج از دنیا و عوالم و حالات او ادراک کند من آن شب فهمیدم که در نزدیکی چه کوره پر از آتش گداخته ایستاده و دارم از سرما می‌لرزم او میخواست و میکوشید که سربات قلب او که از هجر من در جوش بود از من مخفی بماند وقتی آدم بلایی را بومی میکشد بیشتر احتیاج به دوستی و مهربانی دارد همش از خودم میپرسیدم که درباره من چه فکر می کند حتما به خود می شایسته عشق من نیست با هم نمی توانیم سر کنیم وسط راه خواهد گذاشت و خواهد رفت شاید هم حق با او بود عواده را که در خانه ما اتفاق افتاده بود برایش گفتم اول از مادرم برای شکایت کردم گفتم که از آن روز به بعد دائما آیت الکرسی می و به در و دیوار خانه فوت می کند و از امروز صبح خط عدمن یا جیب گرفته به عقیده مادرم علت بدبختی که به ما رو آورده این است که شب چهارشنبه آدم بدشگونی پا به خانه ما گذاشته است همین که خواستم بگویم که پدرم را تبعید کردند، بغز گلویم را گرفت. برگشتم و با چش‌های اشکبار در تاریکی شب به اون نگاه کردم و گفتم من دیگر جز شما هیچ کس را ندارم که پناه و یار من باشد. دست انداخ و بازوی لخت من را گرفت و چنان فشار داد که من احساس درد کردم. بازوی لخت مرا گرفت و تمام تن مرا به طرف خود کشید آقای عزیز تعجب نکنید من در منتهای لذت حتی هنگامی که در کوره سعادت گداخته می‌شوم، با مزه تلخ زهر زندگی را که ته زبانم هست میچشم چه لذتی مرا از این تماس دست با او با بازوی لختم احساس کردم با وجود این چندشم شد چنین انتظاری نداشتم این مرد مثل سر به نظر می آمد خیال می کرد می تواند سوز درونیاش را پنهان کند اما از تمام خطوط صورتش از سرخی که در چشمهایش برق می زد از سکوتی که ناگهان به او دست می داد از لرزهی که لبان خشک او را فرا می گرفت پریشانی و تشنج او احساس می شد با وجود این انسان همیشه دودل بود و نمی دانست با کی سر و کار دارد برای چه بازم مرا فشار داد دلش به حال من سوخت که من به خاطر منظور مشترکمان دارم خانه و خانواده و پدر رو، پدرم را فدا میکنم وقتی به این فکر افتادم چندشم شد دلم نمیخواست که او به حال من دل سوزی کند شاید برای این بازی مرا فشار داد که گفتم بی پناه و یابر هستم و او گرمای عشق مرا احساس کرد او این زیبا بود این آن چیزی بود که من تشنهش بودم من میخواستم که او از چشمهای طالب من احساس کند که اگر فداکاری میکنم محص خاطر اوست محص خاطر این است که او را دوست دارم محض خاطر این است که تصور میکردم پس از این همه خرمهره که به دست افتاده بالاخره گوهری پیدا کردم آقای نازم توجه کنید من آدم علیلی هستم به صورت ظاهر من نگاه نکنید اینکه اینقدر در اروپا پرسه می زنم و با وجود علاقه که به ایران دارم یک قسمتش برای معالجه خودم است باها خودم را به پروفسورهای درجه اول اروپا نشان دادم ظاهرا هیچ عیبی ندارم بیشتر من آنها مرا سالم تشخیص دادند تمام ارکان جسم من سالم است اما گاهی تمام بدنم میل تنم مشتعل می شود قلبم می گیرد به من گفتند که من گرفتان هیبنو شدم پوست بدنم سرانگشتانم نگاه چشمم همه چیز من زیادتر از حد معمول حساس هستند عوامل خارجی بیش از حد معمول در من اثر می کنند. و این حساسیت العاده باعث می شود که حساب من بیش از مقداری که ضروری است تحریک شود چه میگویم؟ مواد و ته دلتان من رو مسخره کنید اینهایی که میگویم از ابتزاد یک قدم بیشتر فاصله ندارد با وجود این برای من دردناک است خودم هم نمیفهمم این پردهی که استاد از چشمهای من ساخته آنقدر هم بیربت نیست او چیزی فهمیده که من خودم هم تا به حال شد ادراک نکرده بودم این چشم ها، این نگاه گویاتر و فسیحتر از حد معمول است یک عمر این پرده مرا رو زج درده است میدانید چرا میخواستم این پرده را از شما بگیرم؟ میخواستم آن را بسوزانم. اما چه فایده؟ الان که دارم داستان شکنجه دائمه زندگی ملالتوارم را برای شما میگویم می بینم که این بدبختی از من جدا شدنی نیست چه پرده باشد چه نباشد این زجر و شکنجه این خشم و وحشت همیشه در من هست از من دست بر نمیدارد.